نوار شماره 537 ای قسپت پنجم کتاب کارنینا، اثر تلستوی ترجمه محمد علی شیرازی قفلی 113 ب من فرصت دهی تا نیک در این باره بیاندیشم و راهی پیدا نمایم که برای همیشه با هم زندگی کنیم و فردا آنا کلام او را قطع کرده و گفت پسرم چه خواهد شد نامه را مگر نخواندی او من را مجبور به ترک پسرم می کند ولی من هرگز یارای دوری از فرزندم را نخواهم داشت مرد گفت ولی تو را به خدا بیاندیش که ترک فرزند یا رهایی از این ننگ و رسوایی کدام یک بهتر است. آنا گفت. ننگ و رسوایی برای کی؟ مرد گفت. برای همه و به خصوص برای شخص تو. آنا گفت. آیا وضعه مرا ننگین و مقرون بر رسوایی میدانی؟ مرد گفت. نه آن را این گونه توصیف مکن. اینگونه گونه توصیف ها از وقتی که تو را دوست میدارم برایم هیچ قیمتی ندارد. من در دنیا جز به عشق تو به چیز دیگری اهمیت نمی دهم. من به موقعیت خود فخر و مباهات می کنم زیرا زیرا دیگر نتوانست بگوید که برای چه به موقعیت خود می بالد. در این موقع، احساس یست و نامیدی و افتضاح و رسوایی به را متأثیر ساخته و بنای گریستن را گذاشت فرونسکی هم برای اولین مصحبه در زندگی خود متأثر شد ولی نتوانست آن را دریابد چه بر او معلوم نشد که رقت او برای آنکاریناست که در پستگاهی که سرنگون شده و نمیتواند وی را برهاند یا برای احساس اشتباه و گناه خود میباشد که باعث یا عامل بیچارگی و بدبختی آنا کارنینا شده است فرانسکی با صدای ای گفت آیا طلاق غیر ممکن است کارنینا سری جواند ولی چیزی نگفت مرد گفت آیا نمیشود پسرت را با خود بیاوری و شوهر را ترک گویی گفت آری. این ممکن است ولی تمام چیزها بسته به رفتار او باشد. روز سه شنبه به پترزبورگ میروم و در آن روز همه چیز معلوم می شود. گفتار پنجه صبح روز سه آنا کارنینا به پترزبورگ مراجعت کرد. او امید داشت که شوهر خود را در انتظار خیش بیابد. ولی همین که کالیسگرش در خانه توقف کرد او را ندید و به وی گفتند که شوهرش در اتاق خود با منشیخیش مشغول کار است. آنکارنینا یکی از خدمه را فرستاد تا شوهرش را از آمدن او مطلع سازد. گاه به اتاق خواب خود رفته مشغول مرتب کردن بعضی کارهای خود گردید و منتظر آمدن شوهرش گردید. یک ساعت گذشت. آه. کارنیم به سراغ زوجه نرفت. آننا به اتاق قضا خودی رفت و با صدای بلندی که شوهرش بشنود دستورهایی به خدمتکاران داد. و چون دید منشی کارین خارج شد و رفت و ممکن است کارین هم برا به عادت به دنبال او برود از این تو فوری به اتاق کار شوهرش رفته با گامهای ثابتی داخل اتاق شد. کارین لباس رسمی خود را پوشیده و پشت میز تحریر نشسته بود با چشمان خسته مبخوتانه جلوی خود را می نگدید. آنا کارنینا پی بود که شوهرش درباره او فکر می کند. کارنین یک مرتبه متوجه شد که آننا در برابر او ایستاده است. خواست از جای برخی ولی لحظه ای مکس کرد. چهترش سرخ شده از جای برخواست و دست او را در دست گرفت. در حالی که به سر و پیشانی او نگاه می کرد سعی داشت که چشمانش با چشمان او متلاقی نگردد و گفت من خیلی خوش که تو مراجعت کردی. آنگاه او را بر روی یکی از نینکت و خودش نیز در کنارش نشست. چندین مرتبه دهان باز کرد که چیزی بگوید ولی هر بار یارای تکلم پیدانه نمی‌کرد و ساکت می ماد آن نکارنینا آماده ی این ملاقات و مستعد شنیدن و دیدن تحقیر شوهرش گردیده بود ولی همین که حالت شوهر خود را آنگونه مشاهده کرد در خود احساس شفقت کرده و بر حال او رقت نمود حال سیرج چطور است؟ سپس بدونان که منتظر جواب آنا بشود دست حقیب سخنان خود گفت من می میروند و امروز هم نمیتوانم ناهار را در اینجا سرس کنم من خیال داشتم به موسکو بروم تو کار خوبی کردی که به اینجا آمدی بار دیگر سکوت برقرار گردید آنها متوجه گردید که شوهرش جرأت حرف زادن را ندارد از این رو تصمیم گرفت که او سر صحبت را باز نماید در حالی که با نگاه های ثابتی شوهر را مینگریست گفت کارنین گوش بده من زن پلید و زوجه خیادتکاری هستم و کلون آمدم تا به تو بگویم که نمی توانم حقیقت را مکتون بدارم کارنین در حالی که از چشمانش آثار کینه و نفرت آشکار بود با صدای خشنی گفت من این را میدانم ولی آنچه را در نامه خود به تو نوشتم تکرار می کنم. و آن این است که تا قضیه از مردم پوشیده مانده و نامم ننگین نشده است، آن را ندیده میگیرم. ولی اگر مفتزه و رسوا شوم مجبور میگردم برای حفظ و شرافت و آبروی خود تصمیمات مفتزی اتخاذ نمایم. آنکانینا که با خجلت وری حراسان به او نگاه میکرد گفت، ولی رابطه با علاقه ما آنگونه که در سابق بوده است نخواهد بود، صدای خشن و آمرانی کارنین حس رقت و شفقت را در آن کارنینا مهد کرده تصمیم گرفت به هر قیمتی شده است تکلیف خود را معین کند. از این رو به سخنان خیش ادامه داد و گفت من نمی توانم تو باشم. مادامی که کانین با خنده تم از کلام او را قطع کرده و گفت من یقین دارم این گونه زندگانی که برای خود انتخاب کرده ای فهم و درایت تو را از میان برده آنها آهی کشیده و سرش بر روی سینه‌اش فرود آمد. کارنین در تعبیر سخنان خود گفت: من نمی آورم که چگونه عقل علیل تو توانسته است بین گناه و خیانت و امکان عدای وظیفه زوجیت هماهنگی ایجاد کند. آنها گفت: کارنین، با صراحت بگو از من چه می‌خواهی؟ کارنین گفت: نه تو می‌خاهم که دیگر با این مرد ملاقات نکنی. و رفتارت طوری باشد که شک و شبه تولید نکند و انزار را متوجه تون نسازد. و گمان نمی کنم که این چیز زیادی باشد که از تو در درواز از جمعی حقوق و مزایای زوجی یفت برخودار خواهی بود. آنگاه از جایی برخواست همین که خواست به سوی در برود آنها هم از جایی برخاست. کارمین لحظه ای کرد. کرد. آنها مجال پیدا کرد که از جلوی او بگذرد قسمت چهارم فصل اول کارنین با آنها به زندگانی خود ادامه داده و در یک خانه به سر می بردند. ولی آن دو همچنان مانند دو نفر بیگانه با هم زندگی می کردند کارنین برای اینکه کلفت ها بنوکرها بدگمان نشوند هر روز زوجه خود را میدید ولی ابدا در خانه غذا صرف نمینوید. آنها در خانه شوهر مشوق خود را نمی پذیرفت ولی برای ملاقات او به خارج میرفت و کارنین هم خبر داشت این وعده برای هیچ کدام خوشایند نبود ولی تحمل میکردند زیرا یقین داشتند که دوام نخواهد کرد کارنین امید داشت که آنا کارنینا بالاخره هوشیار شده و بر سر عقل خواهد آمد آنا کارنینا هم یقین داشت ولی نمیدانست چه وقت و به چه شکلی خاتمه خواهد داشت. فرنسکی چون میدید دید که آنها سبر کرده است لذا او هم شکیبایی را اختیار کرده بود. فرنسکی در بخوهی زمستان یک هفته بسیار بدی را گذرانید زیرا از طرف ارتش معمول شده بود که از یک شاهزاده بیگانه که به پترزبورگ آمده بود پذیرایی نموده و همه جا همراه او باشد. ولی شبی به علت شاهزاده شاهزاده کمی کسالت پیدا کرده بود و نمی به تماشا ها یا کافه ها برود فی زود به خانه مراجعه کرد و در آنجا دید که نامه‌ای از آن کارمینا برای او آمده است. نامه را گشوده و سطور زیر را خواند. من ناخوشم و نمیتوانم بیرون بروم. بدون تو هم که تحمل زندگی برایم دشوار است. همین شب بیا. کارمین به نخست نخوستگی رفته و تا ساعت ده هم مراجعه نخواهد کرد. فروزگی از این دعوت آنا کارمینا با وجود من شوهرش متعجب شد ولی با وجود این تصمیم به رفتن گرفت ازایش را صرف کرده و بر روی نیمکتی دراز کشیده به فکر فرو رفت و در همین حال خوابش گرفته وقتی بیدار شد که ساعت نزدیک نه بود فوری لباس و سراندام خود را مرتب کرده با کالسکه به سوی خانه کارنین رفت فروزگی این روز از شدت علاقه و دلبستگی ی آنا کارنینا خسته شده و احساس میکرد که برخلاف حرارت و یا هیجان روزافزون آنا، از درجه عشق او نسبت به آنا کارنینا کاسته می‌شود. سرونسکی سابقا آرزو میکرد که آنا کارنینا حقیقتا او را دوست بدارد تا به سعادت حقیقی نائل گردد. اما اکنون که آنا کارنینا از ته قلب سرونسکی را دوست میداشت و به عشق سوزان او گرفتار شده بود، حس می کرد که به آن سعادتی که میخواسته نرسیده و آن روزی که در ترن آنا كارنینا را دید و با وی به پترزبورگ میرفته خیلی خوشبختتر از این روزی که آنا كارنینا می میباشد بوده است امروز روز خود را بدبخت میدانست و میدید که سعادت او وسطه مساعدت آینده میباشد ولی اتنون می میبیند که بهترین اوقات خوشی و سعادت او عبارت از همان روزهای گذشته بود فرونسکی تصور میکرد که آنا کارنینا باوی مانند سابق نیست. خودش هم از هر حیث تغییر کرده چنان که آننا کارنینا که همین چند لحظه پیش در آن شب نشینی و زن رقاصه صحبت میکرد، خنده زننده و مخفی پیدا کرد. اکنون دیگر فرونسکی به آنا کارنینا آن نگاهی را که مردی برگلی که چیده و در دستش پجمارده نموده است میفکند. اوریسرسکی دیگران زیبایی و دلفریبی بی سابق را در آنا کارنینا نمیدید. فرونسکی در باغبانی عشق خود تصور نمیکرد که هر وقت بخواهد بتواند اشتآنارا را از قلب خود بیرون کند، ولی وقتی که عشقش به آن گرمی سابق نبوده و بلکه سرد شده و تحولی در مناسبات او با آنا کارنینا روی داده بود، احساس وجود گرهی را می‌نمود که گشایش آن برایش دشوار آمد آن کارنینا به فرونسکی گفت: من حسد و رشکی نمیبرم ولی راستی بگو ببینم چرا از شاهزاده خوشد نمیآید؟ فرونکی گفت او قابل معاشرت نیست بلکه به باارت بهتر حیوان قشنگ و در این حال عجیبی است که هرگاه در نمایشگاه هجانوران به معرض نمایش درآید بی جایزه اول را در نمایشگاه حیوانات به چنگ خواهد آورد آن گفت: چکونی به من گفتند که او دارای معلومات عالیه و مرد فهمیده می میباشد سرنقی گفت آری اطلاعات و معلوماتی که کسی از آن چیزی سردن نمیآورد این آدم از آن رو پی معلومات نرفته تا اینکه معلومات را مورد تمسخر و استهزا قرار دهد همانطوری که همه چیز دیگر را جز شبحترانی‌ها و عیش و های خود مورد تمسخر و استهزا قرار می دهد. فرونسکی در حالی که یک پا جلو و یک پا عقب میگذاشت داخل گردی و ابدا متوجه تعجب دربان نشده و بعد همین که داخل شد خود را روبروی کارنین یافت. روشنایی چراغ و چهره خسته کارنین افتاد فرونسکی مبهوت و نگران مشاهده کرد فرونسکی از روی احترام سر خم نمود لبان کارنین حرکت کرد ولی کلمه‌ای خارج نگردید کارنین با انگشت نبه یک کلاه سیاه خود را لمس کرد هر یک راه خود را گرفته و رفتند. ولی شوهر به خارج و محشوق به داخل. فرونسکی خرشناک و مقرور از راه رو گذشت. او با خود می میگفت. این موقعیت خوبی بود. اگر او مقاومت و یا دفاع از شرافت خود میکرد من میتوانستم کاری بکنم. ولی این ضعف و پستی مرا چون قاصبی جلوه می سازد. در حالی که من متجاوز نیستم و هرگز نمیخواهم قاصب باشم. فیرونسکی صدای پای آنها را که در اتاق قدم میزد، شنید وقتی چشمان آنکانینا به فیرونسکی افتاد دیدگانش پر از عشق شد و فریاد درآورد: نه نه این قابل تحمل نیست فیرونسکی گفت عزیزم مقصودم چیست؟ آنها گفت مقصودم چیست؟ تو نمی دانی من چقدر عذاب و انتظار کشیدم؟ من یکی دو ساعت منتظر شدم من تو سرزنش نمیکنم. یقین یعنی تو به علی تخییر نمودی آنگاه دست خود را بر روی شانه هایش افکند. با نگاه های کنجکانه عمیقی او را نگریست سپس کنار او نشست و گفت؟ آیا او را دیدی؟ این تقصیر توست زیرا دیر آمدی فروسی گفت: آری او را دیدم ولی چطور اینجا بود مگر تو در نامت ننوشته که در دفتر نخست زیری خواهد بود. آنها گفت: او رفت ولی زود برگشت باز برای کاری به خارج چه صحبت او را کنار بگذار و از خودمان صحبت کنیم تو ببینم امروز چه کردی امروز هم با شاهستاده بودی فرانسگی گفت آری، او کمی که سالت پیدا کرد و خدا را شکر که صدا از این شهر خواهد رفت تو این چند روزه از مصاحبت او تا چند روزه خسته شدم آنا گفت چرا خسته شدی مگر روز و شب را با او در گردش و ایش و نوش نبودی آیا سایر مردان از زندگانی بیش از این چیز دیگری را میخواهند؟ سرونسکی در حالی که از تغییر قیافه و گرفتگی چهره انا نگران شده بود پاسخ داد من مدتی است که زندگی لحب و لعب را ترک گفتم و یقین بدان که این یک هفته ای را که در مصاحبت شاهزاده گذرانیدم از بدترین روزهای زندگانی من بود آنکانینا با نگاه تند و شک و تردید او را نگریست و گفت امروز لویزا به دیدن من آمد و از شب نشینی شاهزاده آمیز شاختاده برایم تعریف کرد. پیروسکی گفت: من از روی ناچاری در آن شب نشینی شرکت کردم. آنا گفت: آن زنی که در شب نشینی به حال اوریان رخت کی بود؟ آیا او دوست شما تیریزا نبود؟ فرونسکی گفت: من به شما گفتم. آنا کارنینا با خشم کلام او را قطع کرد و گفت: ای مهدو شما چقدر خطرناک و مخوف هستید شما چرا اینقدر کوشش دارید که بر روی زشت کاری های خود پرده بکشید تو گمان میکنی من از زندگانی تو چیزی میدانم هیچ چیز جز آنچه که خود تو برای من تعریف میکنی و کسی چه میداند که تو تمام حقایق را برای من تعریف میکنی یا خلاف آن را سرانسی گفت آنا تو به خوبی درد و علم و قماندوه من را میدانی آیا گفته های مرا باور نداری آیا من چندین بار به تو نگفتم که من هیچ چیزی را از تو پنهان نمیدارم و عواطف و احساسات خود را آنگونه که هست برای تو تشریح مینمایم آنا كارنینا در حالی که سعی و پوشش داشت خود را از چنگال بدگمانی و رشک و حسادت برهانت گفت آری آری تو نمیدانی من از تنهایی خود و دوری از تو چه میکشم و چه احساساتی دارم ولی آیا این عادت، عادت همه شما مردان نمی باشد؟ آیا خود شما این قرائز حیوانی را بر همه چیز بستری نمی دهید؟ در این موقع باز چهره آن آنکانینا بر اثر ادای این کلمات به شکل زننده و مخفی تغییر کرد. پس از لحظه در تعقیب سخنان خود گفت، آیا تو برای ارضای شهوت حیوانی خود به آن شب نشینی نرفتی تا رقص تریزای رقاص را ببینی؟ که دست آنا کارنینا را بوسید و با لطف و ملایمت تمام گفت من خیال کردم که تو رشک و حسد را از خود دور کرده ای آنا گفت آه راست گفتی من رشک و حسدی ندارم ولی آیا تو نمیدانی که من در دوری و انتظار تو چه کشیدم چه قدر ناگوار و دشوار است هنگامی که از من دور هستی آننا کارلینا چهره زیبای خود را برگردانید و همین که قفرات عشقی که در چشمانش حلق زده بود فرو ریخت رو برگردانده پرسید خوب بگو ببینم بین تو و شوهرم چگونه گذشت و آیا او را ملاقات کردی؟ فرانفی گفت من دم در به او برخودم و نزدیک بود تصادمی روی دهد آننا گفت بدون شک او دست خود را به سوی کلاهش برده و به تو سلام کرد در وقتی که آنها کارنینا این کلمات را می گفت دست خود را مانند به کارنین بلند کرد و توری تقلید نمود که فیرونسکی نتوانست از توصم خود داری کند و آنها هم از آن خنده های مخصوص خود نمود که تنین دلکشی داشت. فرونسکی گفت راستی من از حقیقت این مرد سردر نمی او بان با که تو را از دعوت من به خانهاش برحضر کرد. عجیب است که مرا دید و دم نیاورده و اگر با من دعوا و مرافعه میکرد شاید میتوانستم که او را بشناسم ولی اکنون متحیرم که او چگونه آدمیست راستی آدم مرموز و عجیبی است ولی من شک ندارم که او درد میکشد آننا گفت برعکس او کاملا خوشحال و است، من او را میشناسم و به خوبی میدارم که وی از روی تظاهر و ریاکاری به من اظهار اشق و محبت مینماید او می فهمد ولی کاملا خونترد و بیاتفه است. وگرنه چگونه ممکن است مردی که از همه چیز با خبر است تا این درجه حاضر شود که با زن خیانتکار خود در یک خانه زندگی کند. او از مردانگی و انسانیت بدورد. و به منزله یه و عروسکی می باشد اگر من به جای او بودم و زوجه ایمانند خود می داشتم قطع قطعش می کردم و یک روز هم حاضر نمیشدم با او زندگی کنم او نمیفهمد فهمد که حقیقتا تو شوهر من هستی نه او او یک مرد بیگانه و یا به منزله یک وجود زائدی در این خانه می باشد ولی خوب است از این مقوله کمتر آنها ناگهان از ادامه کلام خود خودداری کرد چهرش تغییر نمود. و خشم و غضب او فرو نشست و در چشمانش آثار مهر و محبت ظاهر گشت. سرونسکی سبب این تغییر و انقلاب را نفهمید ولی آنا به وجود بچه‌ای که در شکمش حرکت می‌کرد پی برده بود. گفتار دوم کانین که دم در به سرونسکی برخورده بود از خانه خارج شده یک سر به اپرا و با در استقبال قیصر شرکت نمود پس از شب نشینی به خانه مراجعت کرد و همین که داخل خانه شد اولین کاری که کرد این بود که نگاهی بر جالباتی از کرد ولی پالتوی افسری فرانسکی را روی آن آویزان ندید از پلکان بالا رفته داخل اتاق خود شده و برخلاف عادت لباس خود را از تن بیرون در نیاورد بنای قدم زدم را گذاشت تا اینکه ساعت سه بعد از نیمه شب شد. او از همسر خود خیلی خشمناک بود زیرا او عهد شکنی نموده و مشوقش را در خانه پذیرفته بود و از این رو مستحق مجازات می باشد و باید ویراد طلاق داده و پسر خیش را از او بگیرد آن شب کارنین نخوابیده و از شدت خشم در جای خود می قلتید همین که صبح شد و دانست آن بیدار شده است فوری لباس پوشید و با یک دنیا خشم و قذب به سوی او شتافت آنها که تصور می کرد شوهرش را خوب شناخته است همین که چشمش به او افتاد در جای خود خوش گشتد کارنین از شدت خشم ابرو در هم کشیده بود و لبان خود را به هم فشار میداد. از نگاه هایش علامات تحقیر و صدا و حرکاتش نیز از مراسخ و خشونت بی ای دیده می شد کارنین به خوابگاه آنا کارنینا داخل شده بود بدون آنکه به وی بگوید صبح بخیر او یکسر به سوی میز تحریر آنکانینا رفته، دسته یک کلید را برداشت و قفل را باز کرده کشو را بیرون کشید. آنا فریاد برای چه میخواهی؟ مرد گفت، نامه های محشوقت را. آنها اینجا نیست؟ آنکانینا پس از ادای این کلمات به سوی میز دویده و کشو را برد. این حرکت به کارنین فهماند که حتما نامه ها در کشو میباشد. از این رو با خشونت آنا کارنینا را پس دادهده دو مرتبه کشور را جلو کشید و از داخل آن جعبه کوچکی را که می دانست آنها کاغذهای مهم خود را در آنجا میگذارد بیرون آورد. آنا خواست جعبه را از دست شوهر خود برو باید ولی کارنین برای بار دوم او را پس پسده با صدای خشنی گفت: «بلشی! من باید با تو صحبت کنم. آنگاه جعبه نامه ها را در زیر بغل گرفت. کارنینا ما تو مبهوت ماند. کارنین گفت: مگر من به تو نگفته بودم که اجازه نداری در این خانه با معشوق خود ملاقات کنی؟ آنا کارنینا با لکنت زبان پاسخ داد: من, من فقط برای این با وی ملاقات کردم که ولی نتوانست در همان دم عذری بیاورد. کارنین گفت: من مایه نیستم علل و الالموجباتی که زن شوهرداری را وادار می کند که با معشوق خود ملاقات کند بیشترم آنا کارنینا دو مرحله با صدای گفت: فقط، فقط برای این با او ملاقات کردم که دیگر آنکانینان نتوانست خشونت شوهر خود را تحمل کند و با و تمام فریاد برآورد آیا این بی تو تا این پایی رسیده است که حس نمی کنی که به من اهانت می کنی؟ مرد گفت فقط ممکن است مرد یا زن شرافتمندی اهانت شود اما اگر به دزدی گفته شود دوست عبدا به او اهانتی نشده و بلکه عین حقیقت گفته شده است. آنا گفت من هرگز اینگونه خشونت و سنگدلی را قبلا از تو ندیده بودم. مرد گفت آیا این خشونت و سنگدلی است که مردی به زن خود کمال آزادی را بدهد و خانه خود را پناهگاه شرافت مندانه ای سازد و آن زن نابکار چون این مکان مقدسی را هم به خیانت خویش آلوده سازد؟ آنا کار فریاد برآورد این عمل تو نه تنها بدتر از خشونت و سنگدلی است بلکه پستی و است آنا کارنینا پس از عدای این کلمه خواست برود ولی کانین با صدای ای گفت نرو آنگاه بازوی او را محکم گرفت به طوری که جای فشار انگشتانش در بدن آنا باقی ماند چه گفتی پستی و بیغیرتی بی بیرد و پستی است که زنی شوهر و پسر خود را به خاطر محشوقی ترک گوید ولی چند باز از نان همان شوهر بخورد آن آنکارنینا لحظاتی چند با سرفکندگی و ارتعاش نتوانست آنچرا که روز گذشته درباره تفیلی بودن وجود کارنین در خانه گفته بود تکرار کند و در همان حالی که سکوت اختیار کرده بود و تعمل می نمود به کارنین حق داده و گفته شوهرش را تصدیق کرد سپس با صدای ضعیفی گفت تو نمیتوانی مرا حال مرا بدتر از آنچه که خود میدانم تصویر و توصیف نمایی میخواهم بدانم که چرا این چیزها را به من میگویی مرد گفت چرا این چیزها را به تو میگویم برای اینکه که بدانی پیمان شکنی نموده و شرافت خانه مرا حفظ نکردی من احتیاطات و تدابیر لازم را ارو جلوگیری زیاده روی های تو و معشوقت با سرعتی که تصور آن را نخواهید کرد اتخاس خواهم نمود آنا کارنینا زیر لب گفت آری باید این کار را بکنی مرد گفت آری باید جلوی شهوت رانیهای حیوانی شما گرفته شود و آنا گفت م. کارنین دور از مردانگی است که بزن درماندهای این همه اهانت کنی مرد گفت، تو، تو زن خودخواهی هستی که تنها در بند خود نیستی و ابدا به آلام و نراحتی های مردی که شوهر تو می اهمیت نمی دهی تو، تو به منزله زن پلیدی هستی که نزدیک از زندگانی مرا از هم پاشیده و دنیا را در نظرم تیره و تار سازی کارنینا برای نخستین بار در زندگی خود احساس شفقت و ترحم نسبت به شوهر خود کرده و اظهار پشیمانی نمود سپس سر به زیر آهسته زیر لب گفت افسوس که دیگر نمیتوانم سرنوشت خود را تغییر بدهم ولی کارنین کلمات آهسته او را نشنیده در تغییب کلام خود گفت من آمدم تا به تو بگویم که فردا به سوی موسکو حرکت خواهم کرد و ابدا به این خانه مراجعت نخواهم نمود به وکییر خود اختیار می دهم که طلاق تو را از محکمه بخواهد و پسرم را نیز به خانه خواهر خیش خواهم فرستاد. آن کارمینا در حالی که خیره و اندوه ناک به چهرهی او گفت آیا تو می خواهی با دور کردن پسرم از من انتقام بگیری؟ تو که او را دوست نمیداری همان بهتر که او را نزد من بگذاری؟ مرد گفت: راست است که من بر اثر رنجش و تنفر است و به و محبت به سزایی نمی ولی در عین حال وی را بیش از این نزد تو نخواهم گذاشت برای همیشه خدا نگهدار آنگاه به سوی در رفت تا از آن خارج شود ولی آنا کارنینا به دنبال او دویده فریاد آورد. کارنین <تصفيق> پسرم را برای من گذار من در خواست بخشش رو گذاشت نمی کنم ولی از تو می که اندکی رحم داشته باشی نه تو و نه قانون نمیتواند فرزندم را از من بگیرد. مرد گفت: سیرج بدون مادر باشد بهتر از آن است که تو مادر او باشی. آنها گفت: کاری این کار را مکن. زیرا آنجوز انتقام چیز دیگری نیست. شاید من گناهکار باشم ولی هر چی باشد مادرم. اگر, اگر چه تو حق داشته باشی از من خود انتقام بگیری ولی حق نداری قلب مادری را بشکنی. کارنین گفت کلمات تو پوچ و بی است سزاوار بود پیش از آن که نام من و فرزندت را با خیانت خود بیالایی عاقبت کار را می سنجیدی.